بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و الله على سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعسومین و اللعب الدارینا سعید و درمین نشمعین اللهم اخیرنا جمیه و رحمنا برحمتك و رحم الراحمین حالا به مناسبت بحثی رو که مرحوم شیخ مرتب فرموده خرصتی پیش آمد تا قائده علمیت به اصطلاح یا به اصطلاح دیگه زمان ید که خود یدی که از اسباب زمان مثل اخلاق من اطلاف مالم غیر و حوال روزامه یکی از اسباب زمان از المعروض بین خوبها سنوی و شیعه زمان یده که مستند شمه همین حدیث واحد علالیه ماه اخرت حتی تو عدیه یا تو عدیه. این حدیث یک مقداری بسیم خالا که بحث می شما در شیفتون تحرز شده، مناسب هستی مداره شوید حدیث صحبت می شود. تا اینجا صحبت ما این شد که طبر شواهد موجودی که داریم درمیان اهل سنت این حدیث منحسرن با این متن. از حسن بصری از سماعه ان رسول الله نرمی شده یعنی هم سماعه انفراد داره هم حسن بصری انفراد داره یه سندی با هم بزمی خونید قطاده از سماعه اون ظاهران حسنش افتاده، چون قطاده ان سماعه قطاده ان حسن ان سماره. بعد از حسن چند نفر ازش نرمی کرده لیکن عوائلش انفراد این حدیث انفراد داره این متن افراد داره جای دیگه ما این تعبیر رو نداریم تعاویری که داریم مشابهی مثل آیه مبارک اینالله یعمار کن انتو عبدال اماناته تعبیر احمدان اماناته تعبیر دیگه داریم الاریت و معداد الاریت و مردوده این تعاویر رو داریم اما این تعبیر علمیت با کلمه علمیت معاخده منحسرن از سماست راچه‌ای علاوه بر این بحث، اینجا فقط اشاره حاضر بکنم، یه ادبیات خاصی هم داره این تعبیری. تعبیرا جنبه مثلا قانونی داره. یعنی جنبه ای که میشه توی مسائل اشتمساق کرده متن قانونی است. یک کتاب بود نام المجلة این این در زمان عثمانی ها در ترکیه تمام متن درسیش می متن قانونی شده بود. بسه قانون مدنی همه هست از مجله یک تحرول مجله مرموهای کاشا قطار بعد از مغاز شهر همه شده ما متنه کاملش موجوده شو باهم متعدد یاد داریم اصلا شده داریم توی رستن باز رستن به بازم دارم اون شده یک این مجله احکام خادست این مواد قانونیش خالقا متون قانونی محکمیه یعنی بسید همین از زریم و ها به این سورت در آمده کتاب خوبیه انصافت برای بحث مکاسبتون در موادس اسلامی این مجلد خوبه شایدارو پیدا بشون و تحرول مجلده هم مرحوم آقای آفرانسین کاشوبت ها تعلیخ ما نم دادن در موادی که اشکال دارن کل کتاب رو نده بشن مرحوم در ولی که تحریقم خوبه اما این حسر مجلد بسرار کامل لفتایت خوبی داره در فقه هنفیست مورد همه در ترکیه صحابه عثمانی بود جز موشن فقهی معاملاتی خوبیه انسان صاحب هم قابل استفاده است نه اینکه یعنی برای آشنایی با فقه اسلامی و مثلا تفاوت خودونه با اونها ببینیم کجاها ما درو بینیم کجاها ما تحریرشون بهتره این کتاب نافع است از این جهت که کتاب یک کار نشد. این یک متن قانونی است. کدیه ماده عقد احتات و عدی جزء قانونی است که میشه در دادگاه ها مورد استناد قضات قرار می گیره. من صابرن یک مناسبتی در بحث لازره اثر اون متن مشهور حدیث لازره و لازره متن مشهور است. خوب دقت بکنید در کتب لغت که این حدیث آمده با همین مطمئن لازر و زران در کتب حدیث البته کتب مشغور اهل سنت در نیست آل سفتشی نیامده در موطع مالک هست در موطع مالکی در سفتی نیامده بزنی خیلی خوب اگر ندونیم توی مصند احمد هم نیامده توی مصدرک عبدالله کسر احمد اونجا آمده لازر توی مسادر دیگه ما دست اما توی مسادر دستی کشون مثل بخاری و مسلم و اون چارتر سنن معروف نه آمده لازر اون جمعیه که آمده یا در متون ما همه لازر و لازرانه مطمئن مشکور اینه لکه وقتی به کتاب فرق مراجعه میکنیم پس این کتاب محسوط شیخ یا خلاف شهر که این مطمئن زیاد آورده کتاب اهل سنن خصوصا دو باب محروف یکی با وسیاراتی که ام با خیلی شوهره. کی این کتوده فرقی نداره زر ولذ زرارت فل اسلام این ادنازی لاتیفیه. چه متقن حنیفی لذ و ولذ زرارت. اما وقتی اون چه متقن فرقی شد لذ زر ولذ زرارت فل اسلام؟ به اضافه شده اسلام چرا؟ چون این متن لذ زر ولذ زرارت فل این متن قانونی است. قانونی سجامت این یک مطلبی است که شادسال پانومی میاد. اولین شان الله از خودی از مکان در مسیب از درگیری میشاند. تا وقایعی که من تجربی کردم نه یک در نیمه قلماییم کسی مثلا خطرتی شده بود. اون مسی در دراز راه تر اسلام بود. مثلا در اهل سنت فیگوری کردی. از این تاریخش از مثلا سالهای قرن دومش رواتش از قزاتم قاضی هم. که یعنی این کلمه مثل اسلام رو در اینقدر پرد دوم اضافه شده این انسجام قانونیش بیشتره در مسئول زیدیه کتاب اسمه ما الحکام مال یحیبن حسین چون یحیبن حسین پیش زیدی ها اوائل قیبت سقرهای ماسی بستدن معروف هست بیشونه ها به الامامال حاضی کتابه یحیبن حسین هم در احکام و زیدی یمن هم کردن هستن حادری هستن این کتاب کتاب اصلی شده ایشون هم چند جا این حدیث و لازر در اسلام، فرسلام آمد اسلام. در نصف محسوس و خلاف محسوس هم آمده با لازر, لازر و در اسلام. میکنه خود شیخ در کتاب حدیث که لازر و لازرال مرد یک اونجا عوض شده اون خیلی که من کنم اعتقال خود من داخل این توسط بعد از در که چند به داشتن این اضافه شده چون با این اضافه جنبه قانونیش بهتره چون که اسلام دیگه چونتر. یعنی میخواد که در احکام اسلامی هر درستی نیز لازم و لازمه اون لازمه ولازمه ممکنه که آنها اورفی باشن سلاظ مخصوصاً من عزیز کلمایش رو در محل خودش در کتاب سهاه یا مصباح سهاه داده بود یا قانونه نوشته یه حال لازمه ولازاروره این از یغالش در میاد احتمالای این اصلا زربون مسئلی بوده لا و لا این یک احتماله از سرمشون آقای متعرض نشدن یک اشاره که این اصلا این یوغال ایشان لا زرر ولا ضاروره اصلا بینه عنوان بوده که ضرر اون چیزی که انسان به خودش نرمون میکنه ضاروره اون چیزی که به دیگران ایجابه که این لاذره را ضرره در لسان پیران برعکسا اونها لاذره برای ضرر منعکس شده خب این شبه بوده که این یک متن مثال عرفی باشه این مثال عرفیه این ارزش قانونی پیدا نمیکنه با چرنیت اسلام ارزش قانونی پیدا نمیکنه اصلا خدمتتون که ما الان چند تا متن اینجور کشف شده داریم که در احادیث ما هم اومده حالا این البته این تصنفتش برای هنوز ابهام آوره عین اون مسئله هم عجایبه که در میان اهل سنت اولین کسی که بهش نسبت دو, دو شده حسن بصریه <تصفح> چیز به غریبی هنوز هیچ علاقی به المان قریه کره نمیاجوشه این تو از حسن بصریه خارج شده وقتی با از امام صادق اومده که بعد از حسن بصریه در کتاب غریب الحدیث قاسم سلام از حسن بحثی نهارو کنند اضافه لغا ما اهل سنت اضافه لغا ما قلته این لمیحن الخرس ها مطمئن نشور شنیه اما اضافه لغا ما قدر کرمه لا از نزیسوی را میرسوی اینو این را از حسن بحثی نهارو کنند در کتاب فیله اهل سنت در زیل بحث احنا چون اهل سنت و حتی ها برای مهم اجازه می دن سایه راه بره در حال راه را چکی را بالا سرش شدی در روایات ما داره که نباید چیگی بالا سرش نباشه سایه متحرک و بالا سرش نباشه این مطلب رو در رواز ما آمده اما این مطلب در میان اهل سنت از حسن بسری نقش شده که گفته اوه حل من احرام پله مقنی هم که ازش نقش کردن همین من این کردم که یعنی این طور کردن فقای قواهی احساس و نه به فتح حمزه، لاد اختصار و های قوی. امه خیلی من احرام کلم ما این تعبیر رو در رواد مسلم جعفر هم داریم در رواد در جعفر سلام الله علیه داریم از خیلی من احرام کلم این این مسته از حسن بسی نمکه به قبطران حسن حدود چهت سال ابتادو خورده این سال وفاتش قبل از وفات موسیم جعفر اصلا قبل از ترولد موسیم جعفر وفاتشه حسن درسی البته این اصلا از وحه افعال، از های ارهی ولکه خودشم گوستن که این غلط ادبی سهیه ارحبان باشه به باش. کسر حمز و حیات این رخا یرخا به معنای برزه، بروزه یعنی برای خدا که احرام برستی، بروز سلاطین چیزی روز سر نباشه، سایه نباشه. این متن این چیزی به نظر معمولی میاد، دلیلش کار میشه چیزی شده که یا به حسن درستی خود نسبت بدم مال ائمه ما هست. یک مشکلی درش داره. خیلی متن‌های موجه است. خیلی متن‌های کوشره ادبی هست خود اهل سنت کور ندارن. اما این هست اذا بلغ المقدره کرے اینقدر کر ندارم که حتی ابو غ... عبید که این حدیثو شرح داده در کلاب غریب الحدیثش من میگه من میتونم کر یادی چی خود بودی من لا علم معنی کر کر یادی چی که وقتونه بسیاره بکر اضافه بلقل ما فیده عجیبه اینن تحبیر ما قبر کره لا یونتی سوشه یا لا یونتی سوشه. یا هم حیل من احرم کنم این حدیث حلالیت محاخردت از زبان شیخ بعد از ذکر شده این که حسن بسری به سماره منفردن نسبت داده دیروز از که مستدک همین حدیث و مراجعه که همه از دو جانه نوری که یکی تفسیر شیخ حبا فرد رازی که بیشون مستدک از فیغم برد همینه حدادیت یکی همه از اوال لاعالی جمهور احسایی که ایشان از سماره سماره توی این جندر قال قال رسول الله ما واضحه هر ازش خاصی کتاب مستدرک داریم جب نداریم این لاجه به حدیث هست آرهی این حدیث یک متن قانونی است اینو رقف رو کنه که من بنده شواهدیم از سره این باید ریشه هاش رو قیدا بکنیم که چطور ها در تفکرات احل سنت و در تفکرات ما وجود نداریم این یک از خردیم مرموان دونجردی معتبر بودن که اگر حدیثی بین اونها مشهور باشه از عیمه رد نشه آقاده بروده حالا این بحث فکرهی کنید که از طرف عیمه ما این بحث رد شده این حدیث یا نه ما این مورد معروف این حدیث مورد بسیار محروف این حدیث باق آریت که خود اگرد نطور این بحث داره. آن یه نوع عقدیست یه قراردادیست این دو طرف که مالک حق انتفاع رو به طرف مقابل منتقل میکنه. چون ارز کردیم هر عقد داره اثر خاص خودشه مثلا بک برای نقل اینه اجاره برای نقل مناطقه آریه برای نقل انتفاع. نقل انتفاع یعنی وقتی چه چیزی رو پیش شما آریه بذاشت نه این نه خونه رو به شما داده نه منافعش تمدید کرده میوه شما حتی استفاده داری ما میوه استفاده این حقا استفاده رو اسمشی بیزارد انتفاق حقا انتفاق دارد میوه کتاب که یک ماه پیش آریه بگذار نگاه بکنن این اسمش آریه هست ودیه یه چیزی شبیه اینه لیکن در ودیه بیشتر در جنبه حفاظت اون شهر مفره من میخوام برم سفر کتابم پیش ایک آقای وضیع امانت میذارم این استضاهم وضیع است در آره انتفاق مفره من ارز کردم خیلی دقیق بفرموید هر عقبی یک زاویه داره اون زاویه در نظر گرفت. مثلا فرصم کسی در حقب نکاح زن به شوهر میگه ملک تو که نفسی این باطنه چون در عرض نفاه تملیه کنه سر نیست الان تا مثلا تو سه ماه توی منت و شنیدن که خیلی هم کنجا دارد که تو ازهر و اینها یک مورد اضعای به این صورت که زن به شوهر میگه ملک تو که نفسی ما مرد اصفا اسمشون زواج و تملیه دو ماهی شد شده دو ماهی سر ماهی اسمشون زواج و تملیق. بحث همی کردن درست هر سناهی واضحه به شما باطلی بحث میخواد قطعا باطلی ما چی چیزی از زواج تندیق نداری در آیه مبارکه زواج در مقابل تندیقه ما لذا ازواج کنم امامرکت ایمان کنم میکیانی یعنی در مقابل زوجه زواج تندیقه میشه و هر حال در زوجیت و لذا من این ذابطه به شور کلیه احض کردم در هر احضی شما باید اون نقطه ای رو که مخلوب شماست که میخواییم تو وعای اعتبار ایجادش بکنید باید اون رو بیان بکنید عقض یعنی عقض هر چیزی که شما بیان میخواییم که چی میخواییم توی در عقض مثلا در نکاح در حقیقت ایجاد قلقه زوجیه در وعای اعتبار تمدید توشییم مقابله چی نیست معاوضه چی نیست ایجاد قرقه زوجیت در ویرا اعتماد. ای این از در باب بی نقل عینه. در باب اجاره نقل منافع در باب اریه نقل انفعاله. یعنی چی نقل انتفاع؟ یعنی اگر شما کسی از شما کتاب رو آریه گرفت اون نه مالک کتابه نه حقی به کتاب پیدا میکنه. نه مالک منافع کتاله اما اگر شما اجاره دادیم اون طرف مقابل مالک منافع کتاله خونه تو اجاره دادیم مثلا به ما شما که خونه تو به شخص اجاره دادیم یک ساله یک کسی آمد شش ماه قصد بشن پول رو که از قاصد میگیرن به مستعجر میدن نه به صاحب خونه چون اون مالک منافع بود اما اگر شما خونه را آریه دادیم به شخص. به آنیشتی شما آیه باشه کسی آمد قصد بشه. پول رو که از قاسب بگن به صاحب خونه بگن نداره مستقیه دقیق کرد چون این مالک منافق نداره این فقط حد داشت انتفاق بگنه یه داشت استفاده بگنه اما نه خود خونه میکنه بود نه منافق خونه میکنه بود لذا اگه قاسب بگید قصد بکنه باید پول رو به کی بدن به مالک بگنه نده این آقایی که فوقونه نشسته بود مجانی آریه کردو دقیقی این فرق قیل مرک نقل انتفاع و منافع پس آریه دبایت از عقلی از که انسان انجام میده که مرد اون عقل این است که کسی که این رو انجام میده موجب موجب اون کسی سو آریه میکنه هدف اون انتفاع و استفاده از این اینه لیکن مجانم منافع خونه رو در اختیار بگو حق انتفاع رو در اختیار رو قرار میده اما منافع بلکنه میشه درست شد از همان احد صحابه به صحابه نسبت داده شده دهستی که محضر است، آیا این آریه مضمون هست یا مضمون نیست کسی کتاب شما و یک ماه آریه میدون تو خونش آیا مضمون هست آیا طرف شد گرفت زلزل آمسته آمست کتاب طرف شده ساختان از نیدن آیا زامن هست یا نه بعضی تفاصیل هست ولکه قول مشکول دو تاست یکی اینکه که زامنه بده یکی این که زامن نیست امده دلیل کسانه که در آلیه گفتن زامن هر سالا چند تا دلیل بجای خودش که میخونیم نقطهی لفیفیه همین روایت علیته ده. ده همین روایت علیت تناسلط ده گفتن در آریه مضمون لغول رسول الله علیه الیه مؤکل است حد ثوابیه از نظام ده همین حدیث علیت اون کسایی هم که گفتن ضامن نیست حالا اضافه در مسائل و اساسی و برا اصل ها موارد عام جای کردن این حدیث علیت رو قبول نکرد محسن این حدیث خوابه قبولید همین اشکالی که من چند بار تکار کردن محسن حسن حسن بخیه از سماره نشمیده این قطاع داره برسید این اصل مطلع روشن بشه ما حالا روایت ما در روایت ما این مسئله بانان با عربیت نیامده اما اون زمان آلیه آمده به در روایات ما به این من که عدلیت ما هستند نداریم نه سلبن نه ایجابن اما اون بحث آریه در روایات ما موجود و اتفاق اصحاب ما هم هست که آریه زمان نداره دقیقه سلاحیان رو داره در اون بحث بنای اصحاب ما روایات هم فرابان که در آریه زمانت نیست مزمون نیست آریه مگر به دو شرف علاقه ایل از موردیش از زهر و فرده که مطمئن از مزمونه یکی این که شرف بخونه از بامنون انده شروطی دوبار این که از اون مقدار دارمهرین تجاوز بکنه. اصلا گفته خیلی بخون من کتاب به شما آریه میدم خونه خودتون باشه این برداش برد خونه برادرش اونجا طلب شد اونجا زامنه پس هم ترکیبی که بود خارجی بشه زامن یا شرف رو کنه یا آریه میرن بشه از اینکه مضمون باشه بگه خیلو خوب اشکال نداره پس آریه فی نفسه ها مضمون نیست روایه در اینجا زیاده من باید بحثیم. این بحث نمیشم در روایه هستی ما فرابانه اصحاب ما اونجا قبل فرابانه اون سنه اول که روایات آوردن متعرض اصلا عدالیت نشدن بعد ها که عدالیت یه عاشق در برای آیات ما آمد در کتاب شدیه ما آمد جواب دادن که آری خارجشون ید ید امانه یعنی آمدن دیگه نه جواب بده. نمیدان گوشن شد برای تو که خب آمدن یه عاشق اون عوالیت که تن عدالیت میگوید که بحث کنن گفتن آقا آره مهمون بعدی ها که اوگردن گفتن آقا عدلیت میگه مضمونه خب اینجا چا در یا گفتن تخصیص خوده یا گفتن یک زمانی امانیه یاد امانیست جاییه که گیردن یاد امانی گفتن اینجا تخصیص خوده شده. شد این در واقع درست نیست من همه از کردنم وقتی مبنای یک مسئله در جغل فقیرون یک حدیث محیل نیست ما باید به با همون حساب بکنیم الان در جبد فکری اون زمان مبنای حدیث همین حدیث علیه در باب آریه یکی از احادیث مهمشون همین حدیث علیه بود خب من برای اینکه این مقدار جبد از یک طرف احتمالا زمینه های پیدا شدن این مطلب و این چطور مثلا کار به اینجا کشید و به اینجا اصلا منطقی این رو به اصطلاح یه مقداری من متعرض بشم یک عبارتی رو تا برویین که چی اصلا از این کتاب ابن هر فعلت مید از بعضی خصوصیات پیل از این اصلایشون بخیر یک چون مهمارد بحث آریه یه مقدار زمینه کار برای شما روشن بشه که این نهوه کار شاید خیلی نافع باشه به لحاظ تاریخی در مسئله برنسی کردن من ارز کردم اشتباه نشه ما یه برنسی های تاریخی داریم این مرحله خودتیگیت داریم ما یه دوستان با انگیز تفتیر کردیم نیم از این برموندر بر افراد بشه ابن هرز این روایه بحث رو در کتاب المحلال خودش جلد نو این رو عورده از سفر 169 به بعد من مهمترین رو شبیه کنم بقیهش رو دیگه اگر خواستم آمون برای مراجعه بیشتر مراجعه ایشون میگه که ولی آریت رو غیر و آریه زمان نداره مثل ما مثل شیه انطرفت من غیر و تعدل اون مخلی تقاصیلی در مسئله داده شده اون تقاصیل هم ایشون اشاره می‌کنه. یک و سوا اون ماغوی بله یا ماغی بله یا ماغم یقیب علی یا ماغم یقیب چون بعضی تفصیل دادن که اگر اون آریه پنهان باشه مثل لباسی که زن می این زمانت نداره اما اما ظاهر حیوان باشه دابده باشه چرا ایشون یکی این تفصیل ازشن داده حالا من نمیخوام باهم بله بعد ایشون الاخره و اما تضمیم ها سه این نمناس اختلف بود فقالت کم آبودنان که تضمیم نشد وقالت طایفتون یه مضمونتون علا کلها به ایه رجم تلفن وقالت طایفتون لا یزمن الا انگیشترتن مؤیر زمان ها این ما هم قائلیم چیه قائل بگیم این که با به اصطلاح با شرک میشه درستش نه فیاب و قالت طایفتون لا و ما مهل مستقیر غیر المقه این هم در تعبیر ما هست از غلوره غلور و نه اصل غلول خیانت در غنیمت جنگیه و از یه بود وقتی غنانه جنگی جنگی شد مثلا همه شمدر نه یه وچه نایتون میدوزیم اصل کلمه غل و غلول اینه حلول خیانت در ونهایم جنگی چون تمام جنگی مال همه جنگن هم هر نداشت که کسی دردار جاید با تخصیل بشه ولکه این قیما بعد برای مطلب خیانت هم به کار بود ولکه در اینجا مغل حالا این به چه معنی تحلیل بشن مغل در اینجا میمتهم یعنی المتهم و قال قاعدان اما ماهی و علیه برای ماغوی و کرهولی و سیاب باشه لباس باشه و یعنی و از متعرفه این قول کسانی که این بحثی کدن که مالک نصد به مالک داده طبعا خود ابن هز خیلی به اصطلاح تنبه یعنی عباراتیشان در بین اهل احرسونت معروفی که بیان دسان ابن هز ازشان شمشیر حجاش تونتره خیلی توند بهشون به برسه برکرد کنید در اونجا بیگه مثلا یه و مثل, مثل تومیله ها در تقسیم الفاسد که پنهان باشه یا ظاهر باشه ولا سبیل ولا دلیل اصل اندام قرآن ولا من سنه ولا روایت سبیبه و لا فیاسه ملاقه صاحب صاحبه نولا رعیم در رو برشون پس ها کردن آقا خیلی از اینجور تعبیر بشون متعارف من که میخوندم چونیشون متعارف بشین تعبیر بعدم بعد از رو گفته بعدم برای در درباب شرط من چون چند بار عرض کردم این برای اینکه آیون در ذهنشون باشه بعد این مسئله شرط رو میاره که ما هم داریم نه هم می کنم هست کل تفاصیل بحث مسئله بشم میخوام اون نقطه رسمی شد مهم می بعد در باب شرط میگه و حالا باطلون لنهو شرطون لی کتاب الله حضر وجه این یک تفصیل بگذاره چون اون قصه بوده ما بالا اقوام یشتر تونه شروطن لی کتاب الله این اشاره بونه صحوه باطلون بعد میگه و وقت که مثلا خنفی ها و مالکی ها المجیزین لشروط الفاسده که اجازه میدن شرط های فاسد رو تفریه بکنی خبر مکرو المسلمون اندشبوته من ارسن که بزرگانشون حدیث عبور ندارن اینجا بیم مناسبت بیشون تعبیر میکنه از خبر المسلمون اندشبوته به خبر مکرو یعنی خبر ذاتن دروحه این خبر اصلا دروحه هم آیا خاده بعد ایشان بعد از اینکه این تفاصیل رد می کنه از که هم خیلی مختصر می کنم بعد بیگه من کسانی که میگن آریه زمان داره و کسانی که میگن گره قول ما این که نداره یه پس اطلاح فنور ما فی قول من و منها جملت فوجتنا ما روینا اون کنه روایات این ابن عباس این ابی غریبه قالا جمیهن الاریتو تغرم چون ها دیگه الاریتو تغرم روایت نیست حتوای ابی غریبه و ابن عباس و باز از طریق ابن ون این ابن عمر کانه یا ابن عاریه پسر عمر عبدالعب عمر اونم غالب زمان و من طریق عبدالرزا حالا بله از معاذب نجبل کنم از صحابه است چند تا صحابه رو اسمه حالا معدات. و معداد و کان شره شره قاضی بوده که زمان هم بود زمان امیمونم افغاد شد با اون بحثی که داره که از اونجا نیست و کان شره یوغم منال یعنی در سای قضایی عملا این بود که در باب آهیه تضمیم میکرده و من, من ها اله حسن خیلی عجیبه این که راوی این رواید حسن بسیر اون هم قاعده به زمان بود ایشون نوشه تو مراجعه امزاله و سرحه ان مسعود. این مسعود اهل یمن جزا تابعینه خیلی هم با آیشه علاقه داشته بود هم این شده آیشه هست و ان افائب نبی رواح که این هم تابعینه ان یحیب سعید انساری که احمد سعید محروف و ربیه ربیه سعید و ذکره این دوتا قول علماءه علماء مدینه الذین اگرکو و بهی کان و یغزون قضاوت تو این بود این خوب دقت بکنید قضاوت دادگاه های این بود اگر در آیه بحث می شود حکم به زمانتون باشه در اینجا وقال از ظهری به میگه بذات از اسلام از رسمه که اصلا به مراجعه از ظهری و قضات خیلی عجیبه یعنی معلوم میشه در مساله نصی نداشند اولا قضات این کاره کردن چرا از و شرور هم دیدن این مشکل درست کرده، هی آریه گذاشتن آمدن گزاری شد من قبل ندارم چون قولم قولم قولم نباشه قولم قولمون نگه نه قولمونی قولمونی قضا دیدن که این داره جامعه رو به هم میزنه آمدن برای این تضمی گذاشتن برای آریه این که اگر درست باشه چون هم سندش برای و به حالا یحور و شافی و احمد نه هم برم از مزار عربه این, درست. این اگر درست باشه یواش شواش میشه های حکم رو برای روشن بکنه این رو خیلی من هم در چون در تاریخ فقیه اسلامی نه این یک این مسئله خیلی اساسیه بهش توجه هکم شده یعنی مردم میشه که مردم مسئله آریه و طرف آریه مشکل پیدا کرد گذار با هم یه مشکل کنکه ها این داده عباقی آریه ها از وی میره پس ما یه به زمانه هست از تا که رو این گرسه بشیم این مطلب خودش، ببینیم. این مرد همیشه از رو که عمره نمیداره مرد مولایی تا که درکت کرده باشین واقعا این زبایت مرگوله که داره همیتون وقتی که به امام تا آراض رو جواب میکنه امامیت یه حابیدن خود مشهر و این اصحابی الان همدون مشهر همیت واق نه ایمان می که اگر مواقع آمه هست اون طبیعه است. این چه از ظرافت اومره میگه خب آمه کدوم قضاست و خب کام یا روایاتش در خود اومره نهنده یعنی این مطلب این قد لطیف بوده که اومره یا شما وقتی می خواهی بکنید معیار به کدومی که قرار بدید؟ ببینید در روایاتشون چی نهار کردن؟ تو داخل مقله قوصی میشن تو مکتبشون تو مدرسهشون که سر بازوردن یا اون کرمان اعراب خارج قضات انجام می‌دهونه اون کرمان عملا حکومت انجام می‌ده این عبارت زهری معلوم میشه که این مکتب در اصل ن بوده خیلی عجیبه قضات این شکلو پیدا کرده که بیان تضمیم بکنن چرا؟ چون مشکلات اجتماعی پیدا شده بود حالا من اینجا مورد برزن نسال بدم خیلی بحث لطیفیست چون اینطور ریشیابی کندتر میشه مثلا اومن در زمان ما یه قرآن یا یه همه نبی یا طلب و همه من همه شد از طلب و همه لعزت همه من از طلب و همه این یعنیش طلب و یعنی شما وقتی این وقتی زنها رو طلاق بودید چون خب در عرب قبل از استان حالا بعدی شما همون تو مصنبه هم میترسان رویشن به همون دورم شد هرزم ناره همون وقتی ساله بودن هست مطاره که این, این طلاق مقید بشه حساب کتا پیدا کنه. این تو هرکسی کسی حسبانی شد بگه انتو طالق بکار بکنه اید او تطلبه هون لعدتی یعنی. از او منم ازده رو توح قرار دادن پس باید طلاق جوری باشه وقتی زن طلاق داده شد وارد ادเดشیه پس اگه در حال حیض باشه دیگه ای یعنی نمیشه که روشن این که درباره در حال و آن در حیض نمیشه که ذهنیت یک مقدمه خارجی است. چون اگه در حال حیض زن طلاق می‌دهد نمیشه ادده شروع کنید چون حیض ادده نیست ادده توبه پس این آیه مبارکه آمد که جلوی طلاق ها رو بگیره. اهل بیت هم این مسئله تاکید کردن، که این آیه محدودیت. پس طرف اهل سنت از این خارج شده. حالا شو اهل سنت خود ابن حلد باز اینجا با ما از اینا عجایب روزگارند. ابن حض اون اونم معترضه که در حال حیض باشه واقع نمیشه، خب اینجا جس با شیعه معروف اهل سنت خری میگه اگه در حیض بود در دور موافقه بود، هر خودو سردانت بالای تراسن سر سفره حسابو این لغوی می‌کنه ارقتصادات اینجوری بود دیگه یه بحث طلاقی که نداره حالا در بعضی از مصادر عامه آمده که زمان عمر یا اول براشون این بود که محدید بشه طلاق کتاب از اون شاهرد بشه نه اونایی که ما می‌گیم زمان عمر طلاق زیاد شده خوب بخاطر کنه گفتم این بعد چیه معنی از ما بیریم یک کار بکنم هر دیگفت انتصال قبول بشیم تموم شدن در سوز شدیم کم جروه کارو بگیریم او جدنا که دیگر تونتون طلاق ندن او چند از اون زمان او جدنا لذا از اون زمان ستوا عوض شد که اگر آمد گفت انتطالق ولو شرار او طلاق برست اما این است که نباید لایق چیه؟ دقیقاً میشه؟ مثلا در جاهلیت یک مثال اوش. این، اوش، اوش این مالیات متعارف جاهلیت قبل از اسلام بود. زکات به صورت زکاتی که ما داشتیم. پیغمبر اکرم زکات رو آوردن از روایاتی که از پیغمبر از سال هفتم بعد از هجری حدیبیه نزد او بود. چند طور باید داریم؟ ما نداریم شیعه نخطیم سنویات دارن سنویات دارن؟ خلاصه چیه که پیغمبر من عشق و برداشتن پیغمبر عشق و برداشتن مالیات یک دهم زمان آمد, آمد آمدن مالیات یکدهان را قرار دارن برای تجارت خارجی اگر از در دینه می بود مثلا ارام در مرز ارام و قول خودش توی موطفی در بعضی ارام شون که اصحاب الحق یک تناب میبسیم مثلا این مرضایی که ما فول که که پول باید میدازی یک ده ها میدازد این تناب رزم شد مالیاسی ایسا عمر قرار داد اوش شد بعضها الان در کتب احضی سنت تو قوشی در کتب مالیاسا شده از اوشی که اونا میگیرن قبلش با زمان جاهلیت اون مطلق بود این خصوص تجارت بین منطقت این تجارت خارجی که اسم همه شده عشاق گمروشی رو گفتن عشاقی دیگه من از معمول گمروشه گفتن عشاق به قطعه همون یک مطلب به تحریر ایشان فقه ولاییست این یکی بود یه چیزی دیگه هم در نیمه های قرن اول خب به قطعه همه این تر و عبدالله همه مسعود داد این فقه ولاییست این تر و عبدالله همه مسعود داد ماراه المسلمون حسنان پاوه حسنان اندالله که بعضها تو اصول اسم شد استحسان استحسان چیه؟ بفت بکنیم استحسان اینه که اگر یک عملی در جامعه اسلامی جا بیوکته مقبوض بشه مثل این طبق زوابط نتونیم اثباتش بکنیم بفت بکنیم با زوابط شرعی جود هم نیاد لیکن جا بشن در مردم جا میگه همین که بین مردم جا بس رو قبول بکنن ابن هرز تو کتاب الاحکامشو اصول استحسان و واضه این حدیثم واضه میشه درم ورد بکنن میگه هیچ کتاب از خدا رسول حق جرم ندارن چی ما را با کمون حسن او رضا الله حده اما در بزرگان اهل سنت مثل شافعی مثل مالک یا ادیش از بزرگان اختصا قبول کردن این من شروع میگم شو میخوام بگم که در جامعه اسلامی این مطلب بوده نه اینکه خیال نکنید این چیزی تازگیه گاهی وقات یک مطلب جا می افتاده یعنی یکی از راه حل که مطرح شد برای اینکه بعد از مشکلات جامعه حل بکنیم بود حالا مثال در خود کل دخیل بده نظام بانداری این واژه بانگ در کل جامعه اصلا جا جواب شد اون فاضلستان ترین بانگاری جوان دره حتی علاوه ان در دارن عربی دارن فاضل جواب شد شو بانداری با تمام نظام هسته مشکلی درست می کنه می نداره ولی این بانداری با توائد شرعی مشکل درسته چه ما رعا هم مسلمون حسن هم فروح حسن هم اندالله هیل از فتحه بلایه که بیشون نظرشون این بود که اگر یک محله بیمرو با زوابه قیدا نشه حالا مثالی دیدر اصول خردیم زده موشه کوله هممی چون بودن شما میگه همم فعصیم اون محلوب. مثال مثال اگر تو من سبت آنوی دارم می رو چند ازاد اون دو در شما یه پولی این هممه می خب این چیه این جاله از این اجاره چون مقدار مستفه آبیتون معلوم نیست مقدار زمانی تو هممه مستفه نیست مقداری که تابونیزنی این را تا. و و هم معلوم نیستند اگر اجاره باشیم از این هم معلوم باشیم این هم رو میدن این در گفتن شیل مارا که که که مسلمان ر این در حقیقت یک راهی بود میدونم باشند تو دارتون ای رسول به لایی البته از اهل سنت سر کرده کلام رو به رسوله نسبت بدن البته محققین اهل سنت معطلی این کلام عبدالله این مسعوده اشتباه رسول الله نیست این ذهنیت در عبدالله این مسعود نیمه اول خرمید اوله یعنی عبدالله این مسعود خرمد از امیرومهی در کوفه بود. این تنه که عبدالله مسعود این عملا در بعضی از موارد جاری شد یعنی آمدن نگاه کردن هر جا خوبیه پس بنابراین تا اینجا روشن شد که این بحث تقرینا آریه در حقیقت چیزی از رسول الله نداشن قضا این رو اجرا شد اونا به خاطر اینکه مشکلات پیدا شد، هی میاد میاد دعوا میگه آنی که شما آریه بودین، میگه از همین وقت این دروغ بود، میگه نه آقا فشو. چون قاضی کش هم این شک بکنه، اون طرف صاحب مال باعث بیانه بیاره. و این یعنی این هر هم با این چه میگه خب. حتی اصل زبونت نباشه حقم بابونه. در. وا چه قاضی مودیمون؟ باعث صاحب مال بیانه بیاره. ولی اون کسی که پیش اکه ای آریه بوده نمیخواد یا میخواهد بیا تلف شد بدون افراد تفریل طلب شد اون چی بیاد اثبات میکنه؟ دستگاه فضایی دید این مشکل تولید کرده توشن که میخواهد بگیار به اینجا منتعی شد که بیا در آریه زمان قابل بشه حالا آیا ممکن است این دستگاه فضایی که دنبال این مطلب بود به گفتر غریبه یا به شبس به کل اینها این حدیث علیت رو گلده کردن در عضا... از چون اگه این حدیث از رسول الله ثابت بود که یک که هست به تنهایی نحول نکنه و حسن دستهی هم به تنهایی نحول نکنه درست میکنید یعنی این نقلی رو که این اگر خالیه احکام رو یعنی تاریخ خطاب می‌کنیم، با این زیرا که خیلی بخونی، عجیبی در دارند تاریخ رو بخویم. البته یک بار، این ما به مجبور می‌کنند رفتار اندیشیده رو در اولین آری زمان، اونی که باید انجام این نشون میده که سر اشتغال این که یک مکن قانونی است، یک مکنی است که لذت در سایت اداری می‌خوره. اهلیات ما آخرین هر چقدر و, محروف و این لون مکن معروفه از که شده، این مکن به درد کازو میخوره، به درد یک مکن قانونی میکنه. کوزه گفتن آماده حسن برشی نارو کد هر دیدم و آخه نه تصور اگر وقتی منی صاد خرابه آن، نهتونشونه برشده. 该建议我做那体制。Tamus. Tamus. Arda